سود الله واطاح الطيبين و رحمهم الله سوى اللهم اجعلنا جميعا شریین حنان رحمت هر شد بحث در حقیقت لواحق مقادیر اخباری تا رو متعرض شدیم, شدیم از این برای اینکه یه محور بحثی روشنی باشه ابتدا من تعوذ کلمات مرحوم استاد سهلا علیه و بعد ببینیم مسئله در چه از آییم شد که مرمو مستاد دو کلام برای دو مبنا برای اخباری ها ذکر و ترس ارس کردم تا اونجایی که من میدونم این نقلها دقیقی میستند اجمالا آمده بردیار که ها به جا شده نظرم در این صفحه 144 به برس همونم و اما من الکبرا و دعوه عدم حجیه به الكتاب الکتاب فرض تسلیم ظهور دو وجه هم برای این یکی این که الوجه روول اما با حالت من امن اتباع المتشابه به قولیت فعالا فا اما الگین فی قلوبیم که خوندیم آیرون و المتشابه ماکان را احتماله قبالا للمحکم و حولا نسلدی دای احتمال و خلاف و لذا متشابه شامل زوادر هم میشه اگر هم شک بکنیم یعنی اول احتمال هست اگر احتمال شکم بکنید عدم حجیت کافیه ده چون حجیت احتیاج به امضاداری. داره این خلاصه یه رجعه اولی که ایشان فرمودن نقلن از اخبار. خود ایشان در مقام جمع در مقام جواب فرمودن و امن از متشابه حوض تفاول مناشر این باب تفاؤل اشبحه فیکون المراد منه کون از کلام دو احتماله متساویین به هیف کان کل منهما شبیهن للآخر فیکون المراد منه المجمل ولا يشمل الا ظواهر شلون ای جوابش اینه که متشابه شامل ظواهر نمیشه و توجیهی که فرمدن فرمدن شلون این از باب تفاؤل تشابح و این مراد این است که کلام دارای دو احتمال باشه دو معنا باشه که کلون یوش خدا آخر چون ما گفتیم تشابه تفاول و تفاؤل این تفاؤل رو طریق این نوشته مغ این جور معنا کردن کلام دارای دو احتمال باشه دو معنا باشه که کلون یوش رو آخر این تشابه این گرفتن و لذا شامل کلام مجمل میشه تاش رو این مورد مسعر می‌کنن کسی اگه گفت آب بیار آب رو در عرف در مقایسه با مایه خاصه وقتی فارسی زمان ما عرضاتون توی این شیره آب می‌ریزن به شیر هم آب بگن مثلا فارسی میگه آب بیا دو احتمال درش داده بشه یکی مراد مایه مخصوص باشه که مایع چی باشه که شبیه آب ارسلن که بحثن تشابه رو اینجور گرفتن میگن یعنی این کلام متشابهه چون دارای دو معناست این لفظ داره دو معنی است. کنون یوش به حال آخر هر کدوم این تشابه رو اینجوری گرفتن. این طور که در کتابیشون آمده اینجور نعمل کردن خیلی. معنای غریبی این صافت. معنی ای که. خب ایشون به جای میتوندن که ترموت شاهر این مشتبه. یعنی مقدمات رو مقدمهاتو بفرمند. یا میتوندن تشابه که در اینجا آمده. مثل این البقر تشابه حالا اینا. و همونطور که عرض کردن در محض البلاغه امام می این نماس رو مید شبه شبه تر ها تو شه نه اینکه دو تا احتمال متساوی توی کلام هست و این به اسطلاح سر تشابهه البته حالا شاید ایشون اون ضعب مجموعه لغوی و اصولیشون اینطور معنا کردن و الله پس کردم با ملاحظه خود آیه چی این معنایی فرق عاده قریده این معناییشون قرم درم سنه اصلا کلمه متشابه در قرآن دو بار راجع به کتاب به کار برده شده یک بار کل کتاب متشابهه نفهم در آیه واحده متشابهه اللہ از زده احسان حدیث کتابا متشابه مسانیه تقشه اقامه مجرود و لفر آخر این کتاب رو اولش به عنوان حدیثه بعد به عنوان کتاب مراد این است که قرآن نزله هم از سر تدریجی است. یعنی این کتاب تدریجا در مکه و بعد در مدینه کلام رسول الله حدیثه با که مجموعه کتابه و این مجموعه کتاب یکتشاب متشابهه یعنی بعض هم یشبه رو بخزن مراد اینه اینکه این که بعضی ها یشبه بردن یعنی این بعض اول کسان علف یشبه ها ده هم یشبه ها, ها این مراد از ظاهره مبارکه اینه هر کدام به دیگری شبر دارن یه شبری یکی در کل کتاب توصیف متشابه شده یکی هم در مجموعه از آیات تحبیر به تشابه شده و انزل علیه کل کتاب منهو منهو آیات محتمال هنه امم کتاب و اخره متشابه ها ببینید یه مجموعه ی آیات متشابه هست نفهم بود آیه واقعه متشابه که ایشون معنی اینجور بکنن خیلی عجیب و حتما همون ذهنیت و کلمه متشابه از ما باشیم و زباهر و آیات این معنی که از ذهن ما از میاد در متشابه این در قرآن به کار برده نشده حالا در روایات شاید عرض می کنم بل. اصلا این نیست اونی که در قرآن هست یک خود کتاب متشابهه در مرحله تنظیم اول هم حدیث بعد کتاب میشه. اللهون از نظر اخصار حدیث یعنی این کلمه در تایی 23 سال گفثاری که پیغمبر با مردم داره اما این گفتار کتابه میبینید اینطور نبوده که مثلا در همون اول مبعث پیغمبر کتاب قرآن رو بیارم به مردم به این کتاب یا در آخر نه این به صورت حدیث بوده نزله احسن حدیث این احسن حدیث حدیث اون مرحله است که انسان تمرکز می‌کنه کتابت اون کتاب اون مرحله مروشداری است اصطلاحی دارن یعنی مطلب ما در افق لحظه اینو بهش علم میگن بعد که برسه به تحملات و تدبر ربیعه بشه بعد که برسه به مرحله ابراز حدیث بشه بعد که برسه مرحله نوشتن کتاب بشه بعد که اون کتاب در اختیار مرجو قرار بگیره برای کامند قرآن بشه این یه اصطلاحی از از مفسرین این روزا بزار... بعد حرف نیست خیلی روایت روشینه اما حرف بدی نیست حتیه که اذن داریم، راویه داریم، حدیث داریم، کتاب داریم، قرآن داریم. حالا آخرش هم یه قرآن مولانا به معنی دیگه، حالا متهم قرآن شکرش می‌کنیم. پس این آیه که معنی‌اش اینه: از نزل احسن الحديث. این حدیث خیلی زیباست. این گفتار رسول الله در سن 23 سال خیلی زیباست. اما این گفتار نوشتاره. این اینطور نیست که این گفتار گفته‌های منفردغه باشه. همین احسن الحدیث کتابه <تصفيق> این در صورت نوشتاریش یک کتاب همسان همگون این کتاب همه آیات به هم دیگه میخورن این آیه شبیه اون آیه است. اون آیه شبیه این آیه است. مثلا اگر در یک دوره حرم علیكم مدده یه جایی داره دمن مسروهن این دو تا آیه به هم میخورن نه این یه چیزه اون یه چیزه حالا یک شرایطی بوده خاصی بوده عنوان دم آمده اونجا دمن مسروهن آمده. پس بنابراین خوب دقت قدر اونی که ما از مجموع آیاتون پر این مراد اینه کل کتاب متشابه این کفیدی که آی خویی برمودن قدسه الله و نفسه این همون ذهنیتی که الان ما داریم آیه واحد و کلام واحد رو متشابه گرفتن یعنی مجموع یعنی دارای دو احتمال متساوی، کل احتمال یساب الاخر یشبه آخر، ایشون متشابه رو اینجور معنی بیرسن. مثلا دیگه این بخار مثلا دیگه این هم هم به تلا گفت میشه هم به نقره هم به ترازو این لحظه این تشابه پیدا میتونستون خودشون که منکر مشترکن بنابرای مبنی مشروع فرشنی این که این لحظه این متشابه میشه تشابه رو ایشون تفاول گرفتن از شبه این سر روشن شد رو تفاولشی بگرفتن اون کلام دارای دو معناست کلون یوش به قول آخر اینجوری معنا کر و در قرآن این نیست سال چطور شده ایشون اینجوری فرنده در قرآن متشابه با عنوان سیره فائل دو بار به کار برده شده یکی کل کتاب متشابه و در مقابل او کل کتاب محکمه کتاب اون حکمت آیات رو سوره فصلت من لازم حکیم خبیل علی این حکمت اون که مقام امر و قبل از نزوله در مقام نزول تدریج نازل... ت... نازل شده تو مقام تدریج احسن الحدیث در واقع یک کتاب متشابه در سال دهم همه اواخر سال دهم ده خدا از این مجموعه آیا که کم مونده بود که نازل نشده تعبیر میکنه انزل علیه کتاب منهو و محکمات هن امه کتاب و اخرون متشابه اخر تشابه رو وصف اخر گرفته مجموعه آیات نه آیه کردیم. این نکته بله این مطلبی که ایشون فرمودن با نصف این نلبغر تشابه علینا میخوره با اون میخوره ولی زا از کردید در زیل آیه هم خداوند متعال متعالیتان فهمل لذین فی قلوبه هم زیغون کسانی که گمراهی و انحراف دارن یه فیض طبعون ما تشکیجا ما تشابه هم اون کلام و استاد به ما تشابه میکنه. لکن نه این معنی که بازگیشون اراده کردهن. مراد این آیه مبارکه، یک آیاتی هستن که به نفسه میتونی نگاه بکنید و لذا مسیحی‌ها بو تمسد نمیکنن. مثل قلوب الله احد نمیتونه برای اثبات و الوهیت عیسی به این آیه تمسک کنه. اما یه آیاتی هستن متشابه هم کسی که در گمراهی هست برای این که مثلا مردم رو انحراف بده میاد یکیش رو مراد خدا از ایمارکین میده. نمیاد اون آیه دیگه نه یک آیه ای که دو معنا داره آیه معناش واضحه میاد یک آیه رو ذکر میکنه اون یکی دیگه رو نمیاده مراد آیه اینه فیض طبق اون ماس این ماس به معنی یک آیه نه آیه مثلا میگه فرسون الارب به ها ناظره منشو خدا دیده میشه پس ایسا مسیح هم خداشون هستون دیده میشه مثلا به صفات رو بگید این فقط نه این آیه رو میاره آیه دیگر رو استدلال بشه چون یک آیه مبارکه از سرم کتاب با مسیحیای نجرانه مثلا اندر تاریخی هم تا شما و یک کتابه که این یا دنیا آیه تمس میکنن ایلا ماشوالا خبه من مشهر که بودیم بود. د بود. و من اصلا داشتم قرآن مسیحی قران ماشیشون 135 آیه در قران پیدا کردم که بر برای حقانیت مسیح باشه خودم فکر بدم طب مسیح یا کمتر از چیز داشتن با مسلمون ها چون نبودن توی مکه فقط ورگته نوکر دایی از خدیجه مسیحی بود حالا شاید نوکری کرده چشم شاید گذشته و در مدینه که کلا نبوده لذا نه از نجران اومدن محل افتلا امن این آیه مبارکی میفرما اینها دنبال انحرافن دنبال تعویلن به یک آیه تمسک میکنن با آیات دیگه نه نه اینطور نیست میگم خود من یکی چیزی گفتم من 135 آیه پیدا کردم که دلالت بر حقانیت عیسی مسیح داره کتاب وجب حوال متشابه انداره کتاب متشابه متشابه وصفه بالغو قطی کتاب متشابه در مقابل رابطه اینجوری متشابه اینجوری ولی من غزالی گفته میشه متشابه و متشابه گفته شده اما اونجا متشابه شده گفته شده در اینجا گفتن نه اونجا نه در که در مقابل یه مثلا خلاف داره که یوم اما از نظر رو بگیریم میشه. خلاف ظاهره. متشابه به این دو معنا کلون نه می زیت ماشین بوز زیت راننده زیت راننده غیر از ماشین بوز زیاد از این استعمال ها خیلی زیاد نمیشه ما نه یعنی چون در حالا چون وقت گرفته میشه چون اجازه بفرمایید ما اصلا یه تحلیلی کردیم معنای حدسی بود خیلی از این جایی که الان اصلا گفتیم بین قام زیتون بوز زیتون قائمون چه فهمیدن قام قائم با خامش فهمیدن یه تحلیل مفصلی کردیم الان دیگه جاش اینجا نیست دیگه اگه جواز جواب بدیم خیلی از بحث خودش بعد این خلاف ظاهره متشابه خی... به این معنا که بعضیا مشترک شو بهه درو سن دمی زبان گیره وقتی که یه آیه محکم باشه همون آیه از هم نشه که ممکن متشابه باشه بلغه این خلافی ظاهره این که خلاف ظاهره چون میگیم منها آیاتون منش آیات یه طرفه متشابه یک طرفه ببینید آیا ممکن از این هم ببینید، سلام. شما فرمودید ممکنه. من میگم ممکنه به درد بحث نمیخوره. شما هم. این نیستم چیزی خب ظاهرش که اینطوری که منه آیاتون و آخر بیگیلی تمام آیه میگه چرا همون از یک کیسه ممکن محکم باشه. اما نظر شما ببینید این حیثیت خلاف چون ظاهره اولا این که کتاب که کلا موضوعش اینکه دیگه حیثیت نداره که اینکه حس نذ اون بحث ماضی یه تعریف لغوی داره که نگفتیم چون سابقا چند بار گفتیم دیگه تکرارش مهم بکنیم یکی داره. به هم اونجا مثلا هست. اینا که این نباید باقره به شوام بهدلیل این که مثلا چرا چرا مثلا دیگه بابا نیست. نه خود اون که خدا گفتی، اون قاب موشته برشته. ماند سوییو میگه آه این بحث بوز نیست که شما قرار که بوز احتمال تماله نیست این مراد اینه که اون گاوی که شما گفتیم ما چند جور گاو کدوم گا سفید هست یا هست آبیه آبیه دیگه گفت این سوالش یه این با شده نه بوز نشه باشه دیگه احتمال بوز که نداده که قبل از یه دو اگه جوابش خب حالا بده این خارجه باشه خارجه بعد ایشون تشابه رو این گرفتن بخش نزا هر کلامی که محتمل باشه متشابه گرسن از کلمه اینه که اصطلاحی در کتب ادیه از دو آمده و در ادیه از کتب رسولی ظاهرم جز متشابه قرار دادن این هم هست هر دو اصطلاح من از مرادهایی باشه و من غز انزالک حالا برپرزن این معنایی که درست باشه من توضیح من میدم ولی التزام به احتمال شمول نقول مجرد احتمال غیر قادمی حجیتی ها چون از ظهور ثابت عرضه بناقلان بشد که ردی نشه و مجرد احتمال رد لا یکیفی یک رفت الیده انها مضافن الان تا اینجا پس ایشون تشابه روی گید خب به میتونیم اینطور طور بگی حتی اگر ما متشابه به معنای زو احتماله که کلیون یشبه هل آخر حتی بگیم این تو بحث اصولم پیش میاد دیگه. مثلا فخص وجود حکم و ایدی حکم ملال از دید اهل سنت گفتن وا برای ترتیب نیست میشین دست اول میشین میشه صورت اول آیه اسلام داره میشه دست اول باشه میشه صورت اول خب میگیم این یک احتمال احتمال داره که آیه نداشت باشه اول صورت بعد دست پس این ترازو جو احتمالی احتماله اهل الله و ال گفتن اسلام داره آیه شامل انواع وای میشه خب ممکن از بریم آیه تو مقام بیان نیست احتمال داره که اسلام نشه این اگر مراد متشابه یعنی احتمال کلون هم یوش به ها مشکل نداره که اینی که ایشون فرموزه به لذا بعضی از اصولی ها متشابه رو شامل ظاهر هم میدونن از کلم ظاهرش اینه که این اصطلاح قرآن خیلی از اصطلاح اصولیه یعنی معنی که در آن اراده شده خیلی از معنی اصولیه این این مناقشه و استاد با این روایات با آیه متشابه در بعد فرمودند مضافاً الا ان روایات این یه راهی است که رفتن از قبل این راه قدیمی جدیدم نیست و اون که اگر ما بگیم به زوائد کتاب این اختصاص با آیه تشابه نداره که در ذیل اینجا آورده این خوب بود در ذیل کل بحث میامند خلاصش اینه که شما اگر به این زوائد کتاب جد نیست ما یک طایفه معتنابه از روایات داریم که خبر مخالف کتاب رو تر بکن پس باید ظاهر کتاب حجت باشه چون مراد از مخالف مخالف نفس کتاب تنید چون هیچ احمق نیمی رواز مخالف نفس کتاب رو بیاد جعل بکنه به اعمال که مصال شده پس مراد از مخالف مخالف ظاهر کتاب اینه که ایشان مضافن این از کردم این مضافن اشخال کلیس به کل تفکر اخواری ها نه به خصوص این آیه محکم و متشابه اشکال کلی که اگه شما میگید زواره که تا حجتی نیست پس این روایت چیکار بکنیم میگه مخالف کتاب زوارو طرد او بکن اوجوز بکنیم شرکی که کتا با قبول نکن. مخالف کتاب قبول نکنیم مخالف همین مخالف ظاهره که بازار حجت بشه این مخالف موافقه و, و ان شاء الله چون گفتم وسایل رو می خونم برای همین شد خود صاحب وسایل هم این مطلب رو اوبرده این جدید نیست این قبل از راه خویم من جون در وسایل اگه ایشون اگه رو کردن در کتاب وسایل الشیعه که امروز یک مغزاری گفتیم از اون کتاب بکنید. در کتاب وسایل الشیعه در این چاپی که الان دست منه ام... که به اصطلاح جلد چاپ مرحوم آية ربانی است، من کردم این جلد تحقیق مرغوم آی ربانی نیست. اشکالاتی هم داره. لیکن بابی قرار داره جلده هیچ در این شاپی که من از صفحه 129 ایشون بابی قرار داده که اموز میکند با خاطر همینجر عنوان باب که هستم و وسائل مثلا فرسان آی بروزی رو مثلا باب هجی از از عنوان باب اما صاحب وسائل اون مبناش در باب میاره از اختصار شیوه های خاص وسائل مختارشو عنوان باب قرار میده صاحب وسایل اینجوریه که هرچی که پسواش نظر مبارد کشی اینه عنوان با ببینه عنوان بابا عدم جواز استنباطل احکام نظریه مثلا که اطلاق اینجور این تخصیص بزنیم نظر این مرادش اینه عدم جواز استنباطل احکام نظریه من رو قرآن عنوان با باشن شد نه اینکه که اصلا خود زاهرمی متخلص کلی نه اگه بخویم احکام در بیاریم از اطلاقی از عمومی نمیشه اللا بعد از تفسیر تفسییر را من ننظرم و تعله این عنوان باب سیده از واب سباغااضیه. در این نسخه ای که این آقا چاپ کرده شماره ای که برای رووارد گذاشته تا شماده 82. یه نقطه چندیل و واقعاً آغ خیلی زحمتتیشون خیلی زحمتتی شده من برای ارزیابی ارزشیابی عرض تظماتشان ار می کنم. یکی از کارهایی که خود سال و سال انجام ده این چیدی نیست که بر محقق کتاب کرده باشه یکی از کارهایی که خود و کرده عدد احادیث هر باب رو اوگرده یعنی نکته داشته که مثلا در این باب از کردم بعد ایشون یک کتابی نوشته که مختصره و و استظهار این مختصر رو در چاپ مربومای ربانی با خود کتاب چاپ کردم به اسم فهرست اینی که الان در کتاب ربانی هست. اسم فهرست در اول کتاب هم. این تعلیف خود ساحب وسائله فهرست اصطلاحی نیست متأسفانه در شاپ آروده که نه نیورده بی نیت که این کتاب مستقلیه بله کتاب مستقلیه لیکن اجمال ماخل وسائل یکی از نکاسی که در اونجا در این اجمال داره شماره احادیسه یعنی ساحب وسائل نقطه داشته من مکلب مردون به وقت خارج اصول لاقل نیم منم مخصول میخوام بگم که زحماتی که این مرد در خیلی بیش سال تشیده تا این کتاب رو جمع داری کرده عرضیابی بشه عرضشش داده بشه ایشون مثلا در باب سیزده باب و عدن جواز استنباط در این فهرست بعد میگه فیه سمانون حدیث هم تا حدیث ایک از مزایای این مقلبی که ایشون به عنوان فهرستونه حالا استفاده کلی از وسائل داره شماره گذشته و این نکته حدیث شناسیه یعنی یک امر خیال نفرمایید که مثلا همیشه مثلا کسی کتابو تصحیح کرده مثلا در این کتاب من نمیدونم که این چطور بهش کردم توی نسخه که من دارم 82 شماره زده خب این حتما یه خرابش خرابیه خود صاحبش بوده 80 خب نمیشه 82 در بیار خود صاحب کتاب میگه 80, تا. خب 80 تاست این شماره گذاری که اینجا کرده صوره 82 هم زده جای دیگه هم که این کتاب خرابی داره تو اینجا این, این خوب دقت بکنید من جمله اینجا گفتم که جای دیگه این از حوادث بعد ایشان بعد 82 این خوب ایشان در ذیل این شماره که اینجا داده شماره 81 که غلطه در این صفحه 151 ببینید سال و سال در ذیل که 80 تو قول خودش رو باید میاره البته الان توضیح میده اون 80 تا ایشون درست نیست اون خطا است اما به هر حال خودشون ایشون 80 نوشته اون 80 تا هم خطا است بله و امل ارضا علی القران میخوام بگم این اششاریکای خوری فرزند قدیمیه سابسای جواب میده این 300 سال، سی سال و عمل عرض و علی القرآن این روایزی که میگه عرض و علی القرآن این فلعمل و هینه از این بلکتاب و سنن من ولا یدلو به ظاهر که غیرتکسوره فقط در اون سورته و ظاهرون در قیاس و باطلون. و تقدم فی و آخر این تقدم فی مرادش صفحه به این چاپی که من دارم چون یکی از ظرایف کتاب وسایل که البته کارو مشکل کرده ظریف هست اما مشکل کرده یه تقدماتیایی نسبت به خودش معلوم نیست مثلا با علم جفر و رم در بیاره در این چاپی که من دارم اون تقدم تقدمه‌ای که در اینجا ایشون نقل میکنه صفحه 143 در صفحه 143 یک نکته ای داره که این مراد در حقیقت فی وجه اون اخر تل جمعه بین الا حالا من دیگه ان شاء بعد که خوندم قرار این اشکالایی که آمده از طرف اونها و خود اونها هم سعی کردن جواب بده وجه دوم در کلمات و استاد الروایات الکثیره عن ناحیه سو ان تفسیر قران به من منفسر بعد استاد میفهمند ان الاحذ به ذال کلام لا یکون من تفسیر به تفسیر عبارتون ان کشفل قناع الان ما غالوم این درکه هاشیش از خاموس نهار کده کشفل مغطا فهمه ول کلام و ظاهرفی معنن لی صدق و قناعون لیوکشم و الان تقدیر تدنظر این جواه در رساله موجود و تقدیم این همیند تفسیر لی این تفسیرم به رعی بل تفسیرم به حسب المحابرات الارفیه حالا چرا چون از المرادو به تفسیر به رعی حمل کلام علا خلاف ظاهری ای این که عجیب از استاد تفسیر رأی حمله کلام علا خلاف است او علا عهد محتملاتی معکوم نهی مجملا غیر ظاهرین فیشه این منها به استحصانات تفسیر رعی رو این گرفتن فن به تفسیر رأی المنی یعنی و پل اخبو المنی یعنی و پل اخبا حملال آیات خلاف ظاهره بعد فهمي يغتصم ال ان يكون عن به راي استقلال عمل کتاب، بلا مراجعه و عمل عمل به کتاب به مراجعه روايات احتمال و غیره ما فلم يدل على المنع این خلاصه تفسیر به که ایشون مردای ي مقداري شد خلال بحث‌های آینده روشن میشه. حالا ما چون این دو تا مبنا رو آیت بن هر و خودشون جواب دادن، ما برای اینکه از خیلی دیگه انشالله شاءالله ظُلمی و اون اخباری باشه بده اینجا یک حالی بکنیم تمام این روایات کلی که نا با نحر اجمالی بخونیم و یه توضیحی بدیم. ارکان در باب سیزله بله. البته در اینجا اینا نمیشه که اینجا 82 تا حدیث داره. فهرست 80 تا حدیث همون درسته. بعد از اینایی که ایناییشون حدیث داردن حدیث نبوده ارزت کنم که ایشون در 80 تا حدیث در اینجا آوردن من یه نقطه ای رو کراه هم ارز کردم صاحب وسائل یک مبنایی داره که اگر در یک بابی مثلا 10 تا 20 تا 30 حدیث هست گفت به تحقیب اول علا اصح حالا اصح رو بیاردن این مبنای صاحب وسائله ارزت کنم به کافی هم نسبت دادن ترابعا از زمان س به کافی هم نصرت دادن که ایشونم اثر فعل اثر ورده مال کافی ثابت نیست مال کافی ثابت نیست اثر فعل اثر اما مال واسه ثابت خودش تصریح داره یه استظهار نیست اینجور نیست که کسی بگه خود ایشون میگه که در واقع واحه اثر فعل اثر این اشکال نداره این من کلام چیز دیگر نیست مثلا دعیشون در اینجا که میخونیم چندین حدیث رو سعی کرده ابتذاهن از کتاب کافی بیاره از کتاب کافی بعد مثلا فرض کنیم در اواخر از مثلا از صفحه از حدیث شماره 46 به بعد از کتاب از کتاب بصائر الدرجات محمد بن حسن صفار آورده ایشان. وقتی جمله‌ای از اون روایات با این روایت کافی یکی هم چون اصولا مرحوم صفار استاد یا لا اغا در رسوی استاد و مقدار زیادی از روايات کافی موافق است با همین وسايل صفار، مثلا وسائل در درجه صفوا. لذا به زینه ما این کار وسايل هم درستی نیست. یعنی این کار یک حدیث رو از کافی بیاره همون حدیث از وسايل دو شماره بشه می‌ذاره. خب اونم همونه دیگه، خوب عمل می‌کنه. مجرد اختلاف مصدر کافی نیست. حالا این یک نکته رو عرض کردم بعد انشالله توضیحاتش روشن میشه. این راجع به یک نکته اجمالیه و اما راچده روایات اول حدیثی است که از محمد بن یعقوب محمد ابن اسماعیل نیشابوری شاگرد فضل عن الفضل بن شازان عن صفوان این از کتاب صفوان بن نسخه از بن شازان محمد ابن اسماعیل توصیف واضحی نداره شوالیه برای بن هست است در حال نسخه بدیل حالا مال محمد بن اسماعیل به اصطلاح صاحب نشانه این نسخه از کتاب صفوان کتاب مشهوریه عند منصور ابن حازم بعد صحبتی میکنه گفت انالله الله عز وجل اکثر بنان به خرده منصور ابن حازم نه هم یه شخصیت اجتماعی است هر مرد بسیار بزرگواری است از نظر علمی و جهات مختلف کلم بارده بحثت داره کلام وارد بحث اجزا میشه بشه بعد بعضیشون میفرماید که الیست تعلمون ان رسول الله کان الحجت من الله علی الاخره قالوا بلا قلت و فهین مذا رسول الله من کان الحجت من الله علی الاخره اول قران همون مبنای حسن کلام الله است چنان تو در قران که و خاصون و این مرجی مرجی سایه مرجی علمد مولج مذکره مرج مرجعه کسانی بودند که میگفتن خداوند یعنی همین که انسان به لحظ چیزی بدی برای ایمان و یورجون الامر الاله ان و یرزقهم ان شاء مثلا یا مولانا علیه والا قدری و زنديق الذی لا یؤمن از کلام کریمه زنديق که احتمال باشه زند زنده معروف این از حدود سالهای 128 زمان امام صادق میان کوفی اهل کوفه که خیار ایرانی بودن از اونجا این درس را افتاد حتی یخل بر رجال به خصومتی فعرفت ان قرآن لا یکون حجه الا بقیمه این محل اشخادی و بعد میگه به حضرت گفتم که اشهد ان انهالیین کان قیم القرآن این تلام منصور ابن حازمه که به حضرت عرض میکنه که و کان طاعت و محترزه و کان الحجت الناس بعد رسول الله و انما قاله قرآن و وحق الاخرین اما سه روایت به مطون دیگهش داره که بعد میگه امام حسن و بعد امام حسن تا خود امام صادق. عرباه و و صدوق ال ال الان ابي عن سعد يعقوب ابن يزيد عن صفوان بن يحيى نه لازم که صلو صفوان این نوسته صحیح مشکل نداره ورواه رواه الكشيفي كتاب رجال عن جعفر ابن احمد ابن ايوب جعفر بن احمد بن ايوب تاجر بوده نميشواره بوده این خیلی الان آشنایی باش نداريم عن صفوان بن يحيى ایشون تشيو ورده البته من توضیحاتش ایک وقتی هم زارم گفته باشم توی این دو جاله کشی فیلی مشکلاتی هست این جنه که از مشکلاتش همینه این جعفر استاد کشی نیست استاد استاد بیشانه استاد عیاشیه یعنی کشی به یک واسطه از صفوان نقل نمی کنه. از عیاشی ان جعفر ان صفوان سعیش اینه الان در کتاب کچی این طوره که جعفر ائوده دیگه یهو ای وارد این بحث و خصوصات و تاریخش و گرفتاریش میشن خیلی طول می‌کشه باشه طربتون بعد این حدیث که خب معروض اسامی متعدد داره باز از سیعه باز از شم قبی و باز از شمال اشقال کتاب صفوان درست هم هست است وا الله که اهل بیت اصلا احتیاجی بینم نداره این سالتونفی که مستقلینم کفایت می‌کنه خیلی والا نمیخواد منصور ابن حازم بگه و امام تایید بتونه که درست درسته روایت شماره دو باز بر امام کلهینی بن ابراهیم بن عدی عمن ذکر و ابن یوسف این روایت سندش گیر داره یعنی ارسال داره این روایت هم مفصله آخرش اختلاف میشه نفر شامی میاد که به اصطلاح بار امام بحث بکنه امام میگه حجت چیه میگه کتاب و سنت بعد هشام در اونجا میگه آره کتاب و سنت کافیه در رفت اختلاف میگه گیر میکنه ب... میگه... میگه اول بله میگه خواگه کافی چرا من از تو با من هم اشتراک داریم منم میگم کتاب و سنت هم اشتراک سنت یاری شامی گیر میکنه بعد یونس میگه یه کتاب و سنت شارح میخوان و شارح الان جعفران محمد در زمان ماست این حدیث این دلالت بر این نکته که ظواهر کتاب و حدیث نیستن نکته کار از کردم متاسفانه نگاه یواق علت مقابل همینجوری مجموعه روایت جمع می‌کنه بدون اینکه اون نکته فنی رو ما را آشفته کنه نکته فنی اینه که آیا به اخلاقی کتاب می‌شما را چک کرد نه این چرا خود داره اینوستمنت این که اهل بیت شورای کتابا اخلاجی عزیز مسترم لازم هستی ثقله قطعا به رافت گونی که شوهه نظری دقیق می‌کنی حدیث بعدی که ایشون آورده ان محمد ابن ابی عبدالله چه ظاهرا عسدی باشه و محمد ابن حسن من خودم نشن صفار ظاهر از تعاکیب روزگاه شخصی در قوم بوده اسمش محمد ابن حسن همزمان صفار هم هست اون نیست اون محمد ابن حسن صفاره. این محمد ابن حسن قومیست احتمالا این باشه، جمیعا انسه و ان محمد ابن یحیاء استادش ان احمد ابن محمد اشعری قومی باز جمیعا حسد ابن عباس ابن جریش حریش حریش نمشی اسمش این حسن ابن عباس کتابی در فضل ابن انزل ما داره که همین حدیث معروفی که الان خونده میشه که در شریعه قد برای بر امام در همین کتاب این در کلمات اصحاب ما خیلی به این کتاب حمله شده حتی نجاشی هم به این کتاب اعتراض کرده غیر از ابن قذاری بله نجاشی داره که روا ابن جفرستانی ضعیف و جدا لهو کتاب اینا انزلنا و فیلرز قلب و هو کتاب ردی الحدیث مسترب الالفاظ اینه که اینجا اوورده جزی از این کتابه این مقداری که اوورده و شونم مخصم خوندن حالا اون ابن قضائری که خیلی وزش بدتر بله ابن قضائری اینطور داره زعیفون روانبیجه فرستانی فضل اینا انزلنا کتابن مصنفن خاصد الالفاظ تشهد و مخائله و علا انهو موضوع آن از این مردم که جعله که دار و هادر رجل لا یلتفت و علی و لا یکت و حدیث و این هم عبارت چه این مقضایی چون این گایی برای احراد چوبه بیشه با این خصوصیات و با این تعالیبی که بزرگان از این آقا کرده هم از این عبارت مقضایی تون تره چطور نگاشی عبارتیشون رو بوده اونگه رو بیان کرده. ارز کردم یکی از سرقی که قدرمای اصحاب محسن قومی ها بیشتر داشتن اعتماد بر مشایخه کل این, این کتاب رو از سه راه نقل کرده یکی از محمد بن عبدالله که ظاهر محمد ابن جهتر اصلی باشه بسیار بزرگار انسر یکی از طرف محمد ابن حسن کاریاد سفکار از اون قومی بازمونم از سر. این دوتا یکی هم از شیخ قومی فی زمانی محمد ابن یحیل عطار، این احمد که نقاد بزرگ حدیثه این اشکالاتی که الان به ذهن ما ها میاد اشکالات رجالیست اون یه مسلک دیگریست اسمه شده مسلک مشایخی یا شیوخی این خودش یک ای مسلکی بوده که میامدن حدیث رو ولو ضعیف بود ولو توش مشکل داشت اگر استاد و شیخ استاد شیخ در اون زمان یعنی مثل مرجع تقرید در زمان ما اگر نقل بکنه اون کافی ساره اعتماد نجاشی خودش هم میداره میگه کانها در جل صدیق و سمیع کمن و شیع الکفیق فت تقرال که میرهی تو اصحابنات یقمزونهو یا او فت تجنبت روایت اه الا به واسطه بینی و بینه این واسطه مراد مشایخه یعنی اگر یکی از مشایخ حدیثش نه بکنه من قبول میکنم خودم نباید خودشم شدیده الان رو مبانیه دیده اگه خب فهم ضعیف ضعیف حالا کسی واسه بیاده نیاد فهم نمیتونه که این یه مبنا بوده الان شاید شما بگیم مبنا رو قبول نبوده اون بحث دیگری اول با توضیح مبنا داده بشه قبول آرد یه مسئله است به اختیار خاتون چون این کتاب رو مرحوم کلینی آورده و از اون طرف هم نجاشی و ابن غذایری اینطور طور تندی. بله آقای کویی فهمونه مقتوق البطلان جزمن هست خطران مقتوق البطلانه یک جای روزی کتاب این کتاب حسان اون درجه یعنی که آقای نیست به هر حال عضو مرحوم کلیه که سه تا از مشایخ سه طریق ایشون داره مقصد از طریق احمد که ایشون زند قلوبه و به شدت با قلوب مخالطه و حدیثیناسه بسیار بزرگیه اعتماد ایشان روی مشایخه ولو خود شهر ضعیف باشه چون مشایف برایش اعتماد کردن ایشون اعتماد کرده این حدیثی نخونده برگیر انشاءالا پرده الله اللہ علیه محمد و